حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه بهتر بلک هبا دارته چون بلدی بخندیم و چشم دل ببازیم با اش دل ببندیم هشما که دلم سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا بجواک قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس سلام علیکم حالا احبالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چی کارا میکنین؟ اینجا رادیو پسفرده شماره 989 امروز سشنبه چهارومه است و ماه 1394 من فرشید منافی این برنامه به تیه کنندگی است جلال سعیدی با شماییم تا 54 دقیقه آینده برو چه خبرا چکارا می امروز دیگه روز آخریه که ما داریم در مورد انتخابات پیشرو صحبت میکنیم کنیمیم و از شنبه که دوباره به امکت انتخابات پیش روز تبدیل شده به انتخابات پشت سر و تمام شد رفته پی شو این بحثه بدیم ندیم و اینام دیگه تمام شده دیگه رای بدیم رای ندیم. پس دیگه امروز ما باید پرونده انتخابات رو هر جوری هست ببندیم. امروز میخوایم نگاهی بکنیم به اتفاقات و تحولات پسا انتخاباتی و در مورد احتمالها و شرایطی صحبت کنیم که بعد از برگزاری انتخابات به وجود خواهد اومد بس سلام مخصوص مخصوص میکنیم خدمت همه اون عزیزانی که در شعبات عقض درست از ساعت پایان عقض آرا کارشون شروع میشه و مشغول رعی شماری میشن تو رو خدا درست بشمارین دیگه دیگه شعلای نگهبان به اندازه کافی چلونده دیگه شما دیگه موقع شمردن از سر و تش نزنین تو رو خدا به سمتی که دلتون میخواد رعی رو گرد نکنینش مرسی خلاق ما گفته ببین فوش ندیم فوش نمیدیم فقط بله. بهتون میگیم که آقا فرشید این جریان مجلس ما حکایت تئاتر روحوزی حالا بشینو بخون فقط حال کن انشالله که موفق بشی بله خیلی ممنونم البته برای بعضی هم در حد نمایشنامه های شکسپیر جدی و تأثیر گذاره. حال حالا بالاخره کسی یه تعبیری داره ایشون این رو تاتر روحوزی ارزیابی کردن مرسی از تماستون برو بریم <تصفيق> Wow. Ah. اما خانم آقای این دختر خانم به پسرا چند وقت پیش توی میزگردی که شبکه چهار به صورت زنده پخش میشد یکی از کارشناسایی که دعوت شده بود به برنامه آقا زد به سیم آخر گوش بدین اول بعد می رسیم خدمتتون یعنی ما چه کار کردیم با این انقلاب مسئولین اول انقلاب مثل مرحوم شهید بهشتی گفتن هر کی هر حرفی داره بیا بزن تو رادیو تلویزیون ما جوابشون میدیم نه تنها پاسخی ندادیم بلکه شروع کردیم به خس اینها اول ها بعد لیبرال ها بعد ملی گرایان بعد این حذف رسید به خود ما روشن فکران دینی بعد خود روحانیت خود روحانیت هم حذف شد ای بابا این چه وضعیه ای رسانه ملی جای این حرفاست آقا ناظر پخش چیکار داره میکنه اونجا ناظر پخش اگه کارش بلد بود بعد همینجا برنامه زنده دو تا مشکل فنی میشد بقیه میزگرد تو صحنه آیسه صحبت قبلی رو اینا رو بخش میکردن کلن. آقا وعده اون موقع چرا بتی الان داره به واسه رو به دي دارن جدی جدی آب و برق و اتوبوس و همه اینا مجانی بشه حالا باز کاش همینجا و همینجا کار ختم شد ایشون در ادامه اینجوری به از هانه مومیشون ادامه دادن و بند كردن به روحانيت چند درصد روحانيت درگیر کارها هستن و اتفاقا از نقش سازنده‌ای که در گذشته داشتن در جامعه مدنی هم مفهوم شدن همون وس همون خطابه همون پرداختن به امور معنوی اینا همه گرفتن و دادن به مداهان بله. کسانی که علمشون در خوزه دین بسیار بسیار ضعیف دو دونگ آواز دارند و بقیه مسائل دیگه به خدا راها هست بل به خدا رها شده و ایشون آنتن زندگی آورده هرچی دلش میخواد میگه همینطوری روحانیت برگردن یعنی من نمیدونم واقعا برگردن ملت حق دارن اه. یعنی چی باید بره همون وعض و خطابه و به امور معنوی و اینا بر پس امور مادیشون رو کی ادایت کنه؟ کشور رو کی اداره کنه؟ به قول حسین این عصب زین کرده بدن افسار پاره تحویل بگیرن؟ شما خودت بودی این کاری میکردی؟ نه خودت بودی این کاری میکردی؟ بعدش حالا این حرفا به کنار. یعنی چی مدده ها فقط دو دنگ صدا دارن؟ محمود کریمی رو صدا کنم بیاد توجیهت کنه بفهمی به جز دو دنگ صدا چه چیزای دیگه هم داره؟ حیف که بعد از این برنامه از سرنوشت ایشون اطلاع چندانی در دست نیست دا یه یعنی نه حاج محمودو میفرست سر وقتش قشنگ دوجیش کنه که مدده ها به جز دنگ صدا چه قابلیت های دیگه ای دارن بله او oh, yeah. oh, yes. برچی؟ میگم اپلت خوب کار میکنه چطور؟ امدان رفتی یه سری کسایی وردی که نه صداشون خوبه نه بامزن چه وقتی تو رفتی قدر تو رو بیشتر بدونه ای ناخره باشه باشه من فرشیدم از اسفهان من هیچی نمیگم من شما رو باگذار میکنم به همین بچهایی که گفتیم ما باگذارش میکنیم به خدا من باگذار بشم بتون شامل حال ما شد <تصفح> شما خود میدونین خودتون میدونین با این بچه ها جوارت داری بیا پراک <تصفح> بله ای ویزا بهت بیا همین دیگه من حرفی ندارم بذارم <تصفيق> oh, <yes. تصفح> یار گنیمز هر نه هر که مونده ای مسعرنا دعا کنی به حق 14 چهار ده تا برنامه مونده تو رو خدا دعا کنی دعا کنی عزیزان شب قدر فرجید ما دستمان نگیرد الہیامی یک صلوات بفرست آ ها 11 تا مونده این چند روز پیش بوده دیگه 11 تا مونده شما میتونین روزه 11 همی هم یعنی 11 تا مونده هم دیگه بخونیم کم کم ای بابا ای بابا <تصفيق> رضوان چه خبر خوبی سلام سلامتی سلام خوبم من شما خوبید من اول منظرم رو می‌کنم از طرف این دوستش امام دیگه تماس گرفتم گفتم بی مزه و بدسه همه چی که شما نسبت دادم من گزارش دا می‌کنم هر کسی نظری داره آره دیگه نظرشونه بعدش هم میگه چه خبر هوا هوا فرش جان همونطور که دیروزم گفتیم از امروز بارش‌های شدیدی در استان‌های ایدم و کرمانشاه و لرستان شروع شده که خوشبختانه تا این لحظه هنوز گزارشی از جاری شدن سیل و تلفات و خسارات نداشتیم خدا رو شکر بله واقعا خدا رو شکر اما دامنه این بارش ها با شدت خیلی کمتری به تهران هم میرسه و نه. از فردا تو تهران شاهد بارندگی خواهیم بود که با توجب هوایی گرم این روزا این بارندگی بجز تو ارتفاعات به شکل بارون خواهد بود امیدواریم که این, این بارندگی را... ها آره. این آره. آره. تو ارتفاعات برف, برف خود خود تو آره. داریم اعتمالا بارون داریم. امیدوارم که هستیم که این بارون یه مقدار تو تمیز کردن هوای تهران تاثیر داشته باشه امیدواریم هوا تمیز بشه بارون بیاد نفس بتونیم بله آخی نفس بکشیم مرسی مرسی سعید جان هست من معتقدم که باید رای بدیم اون انتخاباتی که باید توش ره نمی مال سی انانددی سال پیش بود و الان دیگه چه رائی بدیم چه ر ندیم این حکومت پاورجاست پس دقیقا رای بدیم برای اینکه شرایطمون شاید بهتر از این بشه شاید در واقع فکر می کنم همه جای دنیا رای میدن که یه د گروه برن تو مجلس ما باید رای بدیم که یه عده گروه نرن تو مجلس بله ممنون. بلسه توی یه کشوری مثل ایران که رعی دادن به قول بعضی برای اینه که به یه نابگین نبگین اسم انتخابات با نظرم باید عوض کنم بذارن نانتخابات یا همون نانتخابات مثلا بعضی البته نظرشون توی سلام ببخشید چند لحظه میتونم وقتتون رو بگیرم؟ سلام بله بفرمایید. شما روزی جامعه در انتخابات شرکت میکنید؟ چیه مصاحبه است، برای کجا؟ نه خیر مصاحبه نیست. شما برای چی میفارسید؟ ما برای ستاد تبلیغاتی مهندس متدلیان کار میکنیم. میشه خواهش کنم به ایشون رای بدین؟ بله میشه خواهش کنی. خب رای میدین؟ خواهش نکردین کارو. خواهش میکنم روز جمعه به مهندس متدلیان رای بدین. متاسفانه من از شرایط دیدگاه ایشون اصلا اطلاعی ندارم. ببینید ایشون پسر بزرگ حاج قاسم متدلیان هستن. <تص> خب منم پسر زرگه بابا مان گچیه ایشون شعارش توسعه کار عدالت اجتماعی آزادی آبادانی محیط زیست جوانان. ماشاءالله همه اینا رو خودشون تنهایی انجام میدن بله آها راستی رفعه هستم هستا اونم انجام میدن ببخشیدا جسارت نشه به نظر من یه تزریقات و خطنه کودکانا میزدن تنگش دیگه 100 صد درصد می می‌آوردن اگه به ایشون رای ندید دکتر فشارسودی میرم مدرسه گفته باشم ایشونم هم نمی‌شناسم خب برن چی میشه مگه خیلی بد میشه خیلی خیلی خیلی بد میشه بعدن دیگه حق اعتراض نداری عزیز من حق اعتراضم داشته باشم وقت اعتراض ندارم وقتشم داشته باشم حالشو ندارم حالشم داشته باشم جرعتشو ندارم بابا. ای بابا آقا حالا رعی میدیم؟ ایشون یا نه مشکل اینه که من روز جمعه هستم فرصت نمیکنم کنم برم رعی می که رعی ندادن شما به مهندس متدلیان در واقع یه رای به دکتر فشار زادن؟ نه نمی دونستم چه جالب یه ایده ای الان بزنن بسید. نمی شه به دکتر فشارزاده رأی ندم و این رعی ندادن هم در حقیقت یک رای برای مهندس معتدلیان شما حساب بشه؟ آها آه آه نمیدونم خب قاعدت هم باید بشه. خب بسله روی من به عنوان یک رای برای کاندیدای خودتون میتونین حساب کنین. آها خیلی هم ممنون لطف کردین. خواهش میکنم وظیفه بود خدای نگهدار. خدا نگه چی شد؟ چی اینجوری شد؟ آخونم وز میخوام. خانم, خانم، من با شماام. وقت دارین؟ شهر رو یاهایم تای سرد و دوره اینجا هم همن می تو هر شب رویلااته روز می میره بود شهر آواز تکرار هر روز سر میگیره اما با دوبار میخواد که این شب شبگه ما تا بگیره دوباره رنگین این کمون میاد اینا سمونه رنگ مقتا میگیرن شما دوباره آشغا تو کوچه های این شهر می ای آخرین جوورراتتونم بزنیم که مردم ببریم پای صندوق های بعدم که اوضاع بدتر از بدتر شد بدتر از امروز شد که میشه روز به روز بدتر بعد خودتون خجالت میکشین مسی بر... خداافه بعد وقتی داریم آقا هم این وری به متیی که می که شما داری تشویق به تحریم میکننی هم اون وریا که شماداری مردم بود به دعوت به شرکت میکنین آقا به ما چه؟ به من چه؟ ای با ما که گفتیم هرکی دوست داره رعی بده دوست نداره نده ما اصلا حرفی زده کسی رو به سمتی هل دادی در حال مرسی از تماستون مرسی مرسی اه. امروز میخوایم بریم سراغ انتخابات و پسا انتخابات همه ملاحظات در مورد یک رقابت عجیب و غریب. بایگانی جیه شماره 989 بدانید و آگاه باشید انتخاباتی که در آن مردم در شهرستان و روستاها ها بر اساس تایفه و فامیل و پسرخاله و دختر همه بازی رعی می دهند و بعضی از جاها هم کاندیداها در حوزه انتخاباتی خود با دادن آشرشته و تبلت و سیمکارت مردم را به رأی دادن به خودشان ترغیب می نمایند نمی توان لزوماً به دنبال رشد یافتگی سیاسی و اجتماعی توده ها گشت اما چه می توان کرد؟ که انتخاب شدن در مجلس و رانت ناشی از آن برای بعضی ها از نان شب هم واجبتر و لذیزتر است ام از میزان جدیت طرفداران بعضی از نامزدها در قبل بعد و پس از انتخابات رسما کفکردهای رادیو پس دادا داد داد داد داد داد دا دا دا. عشیر سلام پارسال انتخابات نخست وزیری کانادا باختی انجام شد حزب لیبرال حزب کانسرواتیو رو که رهبرش نخست وزیر کانادا بود شکست آقای استوان هاپر بعد از شکست تو تلویزیون گفت مردم مردون هیچ‌وقت اشتباه نمی‌کنن هر تا وقتی که به رقبا من رأی میدن و من شکست می‌خورم مردم همیشه درست میگه. امیدوارم روزی بشه که جمهوری اسلامی هم بتونه هرچی سیاسی رو و هرچی دینی رو نسبت به رأی مردم داشته باشه بهرام هم استرانتون بله ممنون مرد و با مردم ما فرق دارن شاید مردم ما ولی فرقی و شورای نگهبان بالا سرشون نباشه چنان اشتباهات مهلکی ممکنه بکنن که معظمله مجبور شه بره دفتر ازدواج طلاق بزنن برگرد گذران زندگی در این حد به سلام، الی هستم یک بد صدای بیمزه راه های ارتباطی رو میگم. <تصفيق> <تصفيق> بهتون تلفن های برنامه هست۲۴20 22 دو و تلگرام ما هست @paspardagram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 خیلی سریع میریم سراغ اولین تلفن از اون دنیا لطفایی مقدار بیاید این وقت تر باید فرمیدالو سلام جغلن خیام ایتا قضای خوشمزی گیلانی چکنم که ان از با علاقه تو اول پچه با با ایبچه شیبی در نمک و فیل فیل و زرچوبه چند تا پرسی؟ گمه میان با ایبچ روغن سرخ کنید. بعد ایتالیوان آب اوسانیم. فوکونیم گمه میان. چراغ راغ کم کنیم تا خور خار جوش بکنه. بعد دو تا مووانه اوسانیم ان اضافه کنیم. بعد با کتپلا و شورمای تورف خوریم. شیمی جا خالی. فرشته استم آسیات بله خیلی ممنونم از این شرکت کننده البته یک اشتباه لط... لوپی بود اشتباه لوپی قرار بود اول شرکت کننده اون از اون دنیا باشن ولی خب از سیاتل تماس گرفتن یه شرکت کننده دیگه از سیاتل بود یه جابجایی بین شرکت کننده ها ایجاد شد و اما بریم سراغ پروژیوسر یا شف جلال به قول شاعر چه قیامت هست جانا که به عاشقان نمودی دلو جان فدا یه رویت بنما قضای ما واقعا من با شنیدن غذای شما و توضیحات شما یادم رفته بود که اینجا هستم فکر بیکنم که یه رسولان گیلکی نشستم واقعا با. با. با. با این شعری که همکارم خوند من دیگه حرفی برای گفتن ندارم منم ترجیح میدم با یه شعر به همکارم جواب بدم واقعا تعجب کنم من با با. از این شعر ناب که هر کس بخواند شود تاپ تام. به به به به. شب شعر دارن برگزار می‌کنن یا تو برنامه استیکن ما نفهمیدیم ها؟ این الان با ما بودی؟ آقا من اصلا با شما حرف نمیزنم. بله. ب... ب... خیلی متشکرم از پرودوسر های برنامه اجز بدین بریم سراغ اون شرکت کننده ای که قرار بود از اون دنیا تماس بگیرن. یه خود ببین این وتر؟ بله بفرمایید. اوه، پارشیدم علافی. دنگانگوزار جمهوری اسلامی هستم. از آن دنیا بارو دوپس فردایی یا تماس گرفتم. شما این راجب استی که چه آشفتی و بهترین آشفت سجا میدهید. راجب یادتان رفته که سی و سال پیش آشی برایتون تان پختم و تو قابله همه ریختم که تاریخیه. هنازم دارید مشتان میکنید لیکن اینطور نباشه که غیر از من کس دیگه رو برند اعلام کنید حواظتون باشه من کردم بهترین آشپزی رو معید و منصور و سامی و سعید باشید بله متشکرم از بویانگذار جمهوری اسلامی که حال تماس گرفته بودن از اون دنیا برای استیک ما و اما شف شهرام ککش شما استایلت خوبه ولی کپی کاری میکنیم ما بانوان عنوان یه پروڈیسر باید بتونم از شما دفاع کنم. ما الان با این کاپیکاری شما نمیتونم شرمنده. همکار گرامی ایشون سعی کرده بودن شوخی کنن با همون. بحث کاپیکاری مطرح نبوده اصلا. الان با ما بودی یا شرکت کننده متفوی محترم؟ دارم میگم همکار گرامی یعنی شما قاعده تن. خب خیالوم راحت شما ما فکر کنم با ما بودی. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ای بابا ما اصلا دیگه حرف نمیزنم. <تصفيق> <تصفيق> ممنونم از پرودیویسر های برنامه بریم سراغ شرکت کننده بعدی. سلام من خواستم شمه پرس تچین توضیحادم امه با شمه تچین خله پرخ کنده امه تحچین سمت فیرسکو سمنان و گرم سال پلی هسته اول برنج کشی کندی یک سمه برنج قابلمه دریم خالی کندی بعد از اون یک برد گوشت تازه گوشت گیرنی اندویه دریم و نمک دریم خسنده نی روی این برنج الی. بعد از اون تونی ما برقیه برنجه این گوشت سر خالی کنی. این تونی از خالی استانبولی قیسی عالی استفاده کنی خلی خشمزه بونه اما این قضا هفت هفته سپای پستی برشنگ بار بلی بوریش کار برسی تا سایت یک چون که این قضا این باید با شعله کم بپجه خود حافظ. خیلی ممنونم من میخواستم دیگه حرف نزنم ولی این غذاهایی که این دوستمون گفتن انقدر خوشمزه به نظر میومد. که من اسم خودم هم یادم رفت واقعا زنده بود آوری خوب شد گفتیم منم هم این اسم شما رو یاد نمیگیرم چی تمرین میکنم چی بود؟ مواره مهرسا هستم همکاری که واقعا بادمتگم میران جام اما در مورد قضایت باید بگم که چون توش مایی سبور زیاده ما هم مثل همکارم مرداد دوستش داشتم دم شما گیر همکار گرامی مهرسا هستم ما همینه گفتم دیگه مگه ما چیزی دیگ گفتم بیخیال می خیال تو راحت گفتم اجازه بدین دوستان پرودوسر های محترم ما نمیرسیم به ادامه برنامه اگه اجزه بدید بریم سراغ شرکت کننده بعدی سلام باش جان استیک فقط بربره حرف اول میگن تا به بیرونی استیک بر, بر رو قربان همت اون دیدم خداحافظ الله رونو غرموسن همشایری یعنی دستت درد کنه من همیشه از کار کردن با کسایی که فرهنگ و سنت خودشون رو فراموش نمیکنن لذت میبرم واقعا البته من شنیده بودم که تو بعضی از آثار کلاسیک بربری رو با بیسکویت مادر مقایسه کردن ولی استیک بر به نظرم کار جدیدیه منم دوست امتحانش کنم خب ظاهرا های ما دوست که با شما کار کنن ممنونم از تماستون تشکر می کنم عزیز شفا و پرودوسر های برنامه که خیلی با انرژی و جدیت وقت میذارن برای شرکت کننده های استیک اما بریم و صدای اونایی رو بشنویم که هر چند به گاز استیک راه پیدا نکردن اما ما دوست داریم صداشون رو بشنویم هرچند کوتاه سلام میخواستم یه دونه خورشت مازندران رو بهتون معرفی کنم به اسم کرک بپرس نه خوردم نه دیدم چه شکلی هست دو روز نخود و در آب میخیتون تا نافخیش از بین بره بعدش یه پیاز رو یه سی رو با نخود چرخ میکنیم چند تا بادم جون رو با میگیریم اینا رو روی آتیش مسترم رو یا روی اجاق کباب میکنیم پسشون رو میکنیم همزمان چند تا گوجه رو توی آب میزنیم که بپزن یک شغوله داریم توی محشد شغوله محشدی یعنی شجوری بتونم بگم فقیت تو تیمام جهان خصوصا ایران قدرتون شده ه تهیه کوفت میخواستم بگم به صورت اصلیل و فرم قدیمی که تهیه میشه. این ازذا رو با گوشت زبون گاو درست میکردن او نوم توش تریپ میکنه و این دفعه مشغول خوردم میشیم این قدم اینقدر خشه که نگو بله. شکر میکنیم از همه شما و یادآوری میکنم میتونید با پسور به تلگرام ما صدا عکس و ویدئو از کارهاتون بفرستید و همینطور از طریق اپلیکیشن رادیو پسوردا هم میتونید صداتون رو به ما برسونید یادتون باش از شما تا استیک فقط یک گاز فاصل است. حالا یار من این که میره به سر بالو حالا دست مال به دست می‌زنه نگار ما را حالا ما عبر شب و سایه حالا افتاب زنه می گل رانا را پای هر کن تو به مشقاله دور حالا شب تاریک مشی سرچو سحر فرشید جان سلام الان تو خیابونم سلام علیکم میبینم که توی بولوار تبلیغات حدادادل و بزفاش رو با هم زدم منی که نمیخواستم رای بدم میبینم اگه رای ندم همثال اینا میخوان دارن تو مجلس فکر میکنم که باید رای بدم من میرم رای میدم خیلی ممنون برای لقیده شونو گفتن اینشان محفظ باشید ما دخالتی نمی کنیم آقا فرشید خسته نباشیم من پیام به هموطنام اینیم این این که رعی ندیم رعی ندادن خودش یک رایه. متشکرم. بله خیلی ممنونم ایشونم برحال نظرشونو گفتن ما بازم به خالتی نمی کنیم مفهمش. ما جونم براتون بگم در مورد انتخابات روز جمعه اصولا نتیجه نهایی هر چی که باشه منجر به هیچ تحول سیاسی بزرگی نمیشه چرا چون همونجوری که روزهای قبل گفتیم انتخاب اصلی رو شورای نگهبان قبل از ما زحمتش کشیدن و با این وضعیتی که درست کردن ما فقط میتونیم در حد رفقوتی بازی کنیم در این حد که از بین اصولگرایهای غیر و بدبدنی مثل مصباح یزدی و اصولگرایهای یکم شلتری مثل آقای ری شهری. یکی رو انتخاب کنیم اما آم اما اینجوری هم نیست که این انتخاب اهمیت کمی داشته باشه چرا اهمیت داره؟ به خاطر اینکه پای استوانه های نظام وسطه و نظام هم سر استوانه هاش به خصوص تو مجلس خبرگان با شوخی نداره و قاعدتا خیلی براش سخته که ببینه به جای استوانه هاش یه ادبیان با ظاهره مثلا سایر اشکال هندسی برم تو مجلس خبرگان حتی اگه اون سایر اشکال هندسی هم متعلق به خود نظام و در جنای رهبری باشن. این مسئله انقدر روی مخه معظله و یارانه ایشونه که صداشون در اومده که رأی دادن به لیست های فاقد استوانه ها توطه انگلیس و پیش کردن که مردم در روز انتخابات مشت محکمی به دهن انگلیس میزنن و این حرفها و از اونجا که رهبر ما فرزان است و مولاادز فرمایشاتشون نمیره و ملت ما او ولایت مدارن این یعنی پیش بینی نتیجه انتخابات با دقت 99, 99 درصد، البته تو حوزه استوانه‌ها. ها دیگه وقتی آقا اینجوری بگه احمه جمعه بگن دیگه مردم روز جمعه مشت محکمی به دهن انگلیس خواهند دیگه اینا تو یک درزت فکر کن غیر از این باشه اینه که پیشمینی نتیجه انتخابات حد اقل توی اون قسمت استوانهی خودش چندان مشکل نیست ولی یکی از نگرانی‌های آدم‌ها برای انتخابات اینه که نکنه رأی‌شون رو بدزدن بعدم باهاش پوز بدن. امروز خان منشی شرکتی دست خودکار آبی آورده بود بین همکارا پخش میکرد که با این رأی بنویسیم جمعه. گفتم رنگ خودکار چه ربطی به انتخابات داره؟ گفت شرمین جان متوجه نیستی انگار اینا وقتی میخوان تقلب کنن تو انتخابات حال که ندارن همه رو بخونن همینجوری تون تون بر باز میکنن اگه با سبز یا بنفش نوشته شده بود فکر میکنن اصلاح طلبان سریب هاره میکنن میرزن دور تا رای ما کم شه ولی اگه با این خودکار آبیه که بهتون میدن بنویسین رایمونو رو نمیدوستان گفتم اون وقت شما از کجا فهمیدی همه تو شرکت قرار به لیست مورد نظر شما رای بدن که میگیر ایمون از صحبانی خودکاری که تازه داده بود و از دستم گرفت گفت میدونستم طرفدار اصول گرایی برو برو اون ورخیانت کار به مردم گفتم بابا خودکارو بده به دیگه سوال پرسیدم آ بعضی بعضیا هنوز نمیدونن دموکراسی یعنی چی. بعد نگران تقلب در رونده دموکراسی فریبورز غریب سلام. سلام سلام به هندی فرشید جان. فریبورز انگار امروز تیمای اصفهانی در دو جبهه در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بازی داشتن با تیمای اماراتی و قطری. چه خبر از این بازی‌ها و حواشی‌شون؟ آره فرشید اتفاقاً گل کاشتن تیمای اصفهانی یعنی گل زدن. بای بای تو اصفهان دو هیچ از نصر امارات رو با تو قلب اصفهان و ذوباهن شاهکار کرد، تو یکیش لختای قطر رو بود. مهمترین هاشیه بازی هم این بود که بعد از اون جدی که به راه افتاده بود در مورد بازی های باشگاهی ایران با کشورهای اون طرف هاشی خلیج فارس اتفاقاً اماراتی ها هم از هتل هم از مهمان نوازی استوهانی خیلی راضی بودن و تشکر کردن مثل این اونجا حسابی بریون بهشون ساخته بود به به به خب این عزیز لیگ قهرمانان دیگه چه خبر در ورزش؟ یه خبر خوب و نسبتاً مثبت داشتیم فرشید از آخرین وضعیت سارا عبدالملکی دختر ورزشکار ایران که بعد از اون تصابق شدید دارندگی در بیمارستان چند تا عمل جراحی سخت رو پشت سر و به یه بیمارستان توان منتقل شده برای ادامه مالجان اگه موافقی به حرفای خود سارا اوش گوش کنید. خیلی سخت بود. واقعا اوایلش برام واقعا خیلی سخت بود من علش خیلی به خودم انرژی میدم گم نه اشکال نداره ولی بازم برام سخته ولی اتفاق پیش اومده حالا هر طورم شده باش می جنگم درستش میکنم اینکه این بیمارستان که اومدم حس خیلی بهتری داشتم خیلی امیدوارتر بودم به خودم که میتونم هر چه سریعتر از اینجا یه نتیجه ای بگیرم خوشحالی بودی نسپی سارا و این روحیه خوب مثبتش و با امید به بازگشت مجددش به میادین ورزشی. فارسی جان تا تو ورزش دختر هستی این خبرم بدم که گل زیبای الهام فرحمند از تیم دختران آیلد سازان اصفهان با رأی مردم تو برنامه دیشب 90 به عنوان سومین گل دو ماه اخیر فوتبال ایران انتخاب شد، بالاتر از خیلی از گل‌های مردان فوتبالی. بله، خیلی خوشحالیم فقط ان کسی بیش از حد دلواپس نشه از این اتفاق. آره، آره. پرونده ورزش هفتارم فرشید با یه خبر موضوعی میخوام ببندم در مورد انتخابات. امروز چند تا از ورزشی ها, ها کلن امروز تو سایت های مختلف و صحبت کردن در مورد انتخابات. آن مجید جلالی سرمربی سایپا، آره با تکیید بر این چه رأی میده گفته رأی چه نمیدی انگار اصلا نیستی. اصلا محمدخانی بازیکن اسبق پرسپولیس هم گفته انقدر رأی دادم که تو شناخت من دیگه جای موه نیست. بسیار خب علی آقا پروین که رسما پیوسته به ستاد حاجاغال لاریجانی دیگه اه... حالا هم دارن پا به پای سیاسی ها میان انگار دیگه ببینیم چی میشه قراروبتش. سلطان... سلطان سلطان از اون قدیم ندیمان به ستاد انتخاباتی عشان علاقمند بود. آره ببینیم چه میشه روز جمعه و ممنونم ازت فریبارز غریب بادخداافه می میکنیم تا هفته آینده شنبه. تا شنبه آینده خدا نگهذره همه. با سلام 21 و 3 سشنب شب را ضمن تجب از تهدید رئیس پلیس تهران به برخورد با تجمعات عبت انتخاباتی با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز مینمایی. در حال حاضر قائم مقام حزب اعتماد ملی مبنی بر اینکه اصولگرایان می‌خواهند یک میلیون نفر را برای انتخابات به تهران بیاورند و نظر کارشناسان که چه بیارن چه نیران اینا پیش پیش بردن هی جوش نخوره شما ابرازه تمایل ایران برای خرید هواپیما، تاکسی و کامیون از برزیل و درخواست گروه های حال کشور که بیزمد یه چند تا از گروه های هم بخرین ویان اصلا جاشون رو تخم چشای ماست و شبه آور سکوت وزارت خارجه در برابر انگلیس توسط معاون ستاد کل نیروهای مسلح با نظر ناظران که با این ها دیگه میرن یه چیز در مورد دشمن فرضی میسازن بعد بر اساس همونم به موازش حمله میکنن مهمترین سرخط ها خبری که سابته گذشته رو شامل میشدند اینک مشروع خبرها با همکارم بلی بوی بل. با سلام کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه اعلام کرد که تخلفات سه روزنامه و هشت خبرگزاری از ماده پنجا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مراجع قضایی ارجام می شود. در این رابطه یکی از کارشناسان امور روزنامه کیهان کشور به خبرنگار ما گفت بنابرای اطلاعات واصله روزنامه کیهان که با به توجه دولتی بودن از طرفداری از گروه های شرکت کننده در انتخابات من شده بود؟ یکی از این سه روزنامه است، اما چه باک که روزنامه کیهان در کشور ما خودش در حد و قواره یک مرجع قضایی است و یفصود حتی بعضی از مسئولین پیشنهاد دادند که قوای سگانه کشور به چهارگانه تبدیل شده و از این پس در کشور قوای مجریه، مقننه، قضایی و روزنامه کیهان را داشته باشیم تا همه امور مملکتی درست در جایی که باید قرار بگیرد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 قابل واهد واحد غیر مرکزی به سطح شهر رفته تا از روند این تبلیغات گزارشی تایید کنند. همکارانم اگه صدای بندر دارید بفرمایید که شما الان کجای دقیقاً کجایدم بله همکار گرامی بله. من متوجه شدم که گروه دلباپداران بله بله. جلسه فوری انتخاباتی برگزار کردند خب. و به محل این جلسه اومدم تا شما رو در جریان آخرین تحولات قرار بدم همکار گرامی خب به همکار گرامی ما رو در جریان آخرین تحولات قرار بده دیگه همکار گرامی سخنگوی این گروه بعد از پایان جلسه اعلام کرد که شنبه تعطیله جان چی شنبه تاثیری؟ یعنی چیه خامکاری گرامی شنبه تا؟ بالات همکار گرامی اینجوری خب. که تو خنگوی این علام کاتینه تصمیم گرفتن شنبه رو تاثیر کنن همکار گرامی؟ یعنی چی مگه اینا دولت هانه خامکاری گرامی؟ همینجوری نمیشه که هر گروهی تصمیم بگیره یه رو تاثیر باشه که؟ بله خب یکی از های انتخاباتی خب. این گروه ظاهرانیه که به صورت تبلیغات دهان به دهان به مردم بگن شمبه ترتیل تا مردم برن کفر و بخصوص خصوص تهران رعی ندن همکار گرامی ها عجب بالی شیطون تون یعنی نه خب دیگه چی همکاری کردم؟ والا مسئله بلی اینه که همکار گرامی ظاهران اینا در حال خب. روی همگذاشتن پولاشون هستن ای. تا جمعیت زیادی رو از شهرهای دیگه بیارن تهران تا رعی بدن جانم نه نه نه به خدا من که پولیس هستی من نیست من خبردکارم بگم علو خ... پولم کجا بود و بابا پول نهاره چهی برای عجب علو. پاکارن اینا علو آه. چی شد همکار گرمی علو والا دارم اینه بودجه جام میکنن دیگه حالت گل رید بسیده کرد همکار یه چیز جان جان آقا من کار دارم من کار دارم همکار گرمی چه خبری با بعد ما توضیح بده چی شد آه. حامکار گرامی اتوبوس گذاشتن میگن به زودی بیا بورو سفر مهمون ما بعدا حساب واسه کجاست ای من دیگه همکار گرامی من دیگه ظاهرا باید با شما خداحافظی کنم اومدم اومدم ما الو میره الان ای بابا, بابا چی شد <تصدق> الو اون. همکار گرامی با این رفتی میرفت کنار ولی با تشکر از توجه شما ها شبی دیگر و برنامه دیگر خدا هم نگه دار این پیسری کجو کلی رافت درفت زیبا که نرده برای عشق ما موندیم دو همه کلید های تو دو این شامسی اما خانم آقایون دختر خانم‌ها آقا و پسرا داریم راجب انتخابات و پس از انتخابات امروز حرف می‌زنیم ما آخرین روز برنامه زنده رادیو پس فردا این روزا ما از هر کسی با هر تعلق سیاسی و حزبی که داره خیلی می‌شنویم که انتخابات خبرگان این دوره خیلی خیلی مهم و سرنوشت سازه و اینکه چه کسانی وارد قبرگان بشن خیلی واجد اهمیته ولی ما هر جوری حساب می‌کنیم می‌بینیم که این انتخابات درستم نیست که هی اینقدر مهم تلقی بشه چرا الان اولان خدای نکرده مگه رهبر معظم انقلاب قراره توی همین دوره مجلس خبرگان به ملکوته احلا بپیوندن این چه ذهنیتیه که آقا حتی نیروهای دلسوز و فلایت مدار ما دارن که رهبر قراره این دوره خدای نکرده اتفاقی برش بیفته مگه آقا چند سالشونه حالا ما هیچی خود معظم لیکه مثلا رو توی تعلیل که کیان سایر نشیاد با بصیرت این چیزها رو بخونه دپرس نمیشه فکر نمی‌کنه همه یه جورایی از این که رهبر تا آخر دوره خبرگان دوان بیاره، قطع امید کردن که اینجوری دارن مجلس خبرگان این دوره رو سرنوشت ساز نشون میدن؟ اه بعد یه مسئله خیلی بوغرنج‌تر اینه که منطقی نیست فکر کنیم که مثلث جیم میتونه تأثیر گذار باشه در انتخاب رهبر بعدی. ماشاءالله آقا این جنتی و مصباح یزدی که خدا بهشون عمر با بده، خب همشون سن و سال دارتر از ما از زمله هستند دیگه. یعنی اگه بگیم اهمیت خبرگان برای اینه که رهبر دیگه وازا آفتاب لب بوم شده و این حرفا، خب, خب این این های نظام که خدا بهشون عزت بده بیشتر آفتاب لب بومن که احتمال اینکه این عزیزان زبونم لال قبل از اینکه کار به انتخاب رهبر بکشه وازا زبونم لال به ملکوته هلا برن که خیلی بیشتره این مسلسه جیم بندهای خدا میخوان برنم توی خبرگان چورتشونو بزنن هیچ هم تضمین نکرده که رهبری بنده خدا زودتر دوت عقر و لبک بگه اون چرا عزتشون میکنیم آخه یعنی چی شما خونتون بود چه داره؟ نه نداره مسکه داره نه نداره پچه رو مرمورم میشه اینجور اونجورم میشه مرچه داره بابا چیه دل بنده بابا چیه مرچه مرچه میکنه اینجور ای دادی خوشحالم بابا دادی خوشحالم بانه طفل ما سوممون براویم اه. چی شده پسار عزیز بابا انقدر خوشحالکم مورچه بجانش افتاده دادی من انتخابات بله؟ که میشه اصلا حالم خوب میشه ها اصلا تفضل آفرین پسر عزیزم آره. ما به خودمون افتخار میکنیم که شما انقدر حس تکلیفت قویه تکلیف مکلیف تکلیف چی بله؟ بابا بیخیال این حرفا دادی یعنی چه پسر نکنه واقعا مورچه گذاشتی؟ مغز توپ برداشته نه بابا میگم یعنی بله. به خاطر یه چیز دیگه خوشحالم بابا زودتر ما میگه اه. دلیل خوشحالی چیه یا شدت عمل بخاست بابا دادی خب بخ... من از زمان سابق آه. یه آلم کاغذ بنجل چینی وارد کرده بودم مونده بود رو دستم الان برای تبلیغات انتخاباتی همه شرط کردم رفونم به چه قیمتی حقیقتن؟ <تصفح> چه ب... ب... قیمتی پسر جو؟ خوب سود کردم روش دیگه بابا خب انتخابات که پسر عزیزم همهش سوده برای ما دیگه بلا شما اونجوری ما یک جور دیگه <تصفح> دادی تو چطوری از انتخابات سود ببینم. مشاور تبلیغاتی آه. لیست برادر دکتر حداد عادل هستیم دیگه ای بلد. بلد. بلد چه مشاورههایی هایی بهشون دادی دادی چه دیگه قرار شد عکس ما را بزرگ بزنن بالای لیستشان بگن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 <سؤال> یعنی یکی نقش شما خیلی مهمه تو این انتخابات باله. یکی هم نقش اصلاح طلب بود. لط بکش نجس را به کار نبر آه آه دهانت را بکش. ارامه املا نفوذ انگلیس و آمریکا و اسرائیل و عربستان در نظام هستن. باشه بابا الا وقتی شما دیگه وسط خوب نیست. باشه دیگه میگم این نشریه با مسمای که داشتی میخواندی مرچه و داشت این را یک بار دیگه بخون ببینم برای واسه چی مورد داره اونها؟ این خیلی جذاب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 پر معنی این شعر اگر اینه که شما در خانه گناه سرد میگیره بعد اون یکی هی تکذیب میکنه بی تربیت بابا بی خیال بله. دادی چی داری میگی آخه ادامه شو بگو مو آشق این شعر شدیم اصلا بفرماید تفضل میگه که پس چرا هم میشه هی خب. داره مرمورم میشه <تصحیح> آه تفضل آره. مرمور برای مؤمن ثواب داره بخصوص بابا. که در اثر مورچه باشه تفضل تفضل دادی می تابیه حالا نه نه دوره. ای بابا. چرا؟ این جورم میشه؟ ای دورم مرا مرا میشه؟ باله. چرا؟ دوره. باله. باشه چون ما که نماینده که وقتی کاندید میشه تو جلسات تبلیغاتیش اون موتور سیکلت و پیکان میاد بعد که دورهش تموم میشه سوار بنز و پاجیروه بینی پلانده چارت کارخونه داره خدایا کی دیگه رای دادن داره, داره شاپور شاپورم از مردهش بله خیلی ممنونم چالش کنیم والله شاپور جان فکر تنها راهش اینه که به کسی رای بدین که قبل از انتخابات هم با همون پاجیرو بن سوار و اینا باشه دیگه راه دیگه نداره دگل گرانی ما از خودت آدمیست آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد کامران ملکوتی سلام سلام فرهاد جان سلام همگی یه سوال کامران چون؟ شما خونتون مورچه داره دار کشتیم هر چی بود کشتیم اونو خب دیگه اومده جاش چه خبر؟, چه خبر از دست این هاجی ببینیم و انداخت دهن ما بریم ببینیم چه خبر این فیلمیل مایه ما اکران نوروزی رو بگو برامو. آره والا فیلن تمام پهش کننده دنبال این هستن که بتونن فیلمشون رو اکران نوروزی یه جری توی لیست جا بدن فیلن شایه است که رسوایی دو دهنمکی وادیگارد حاتم کیا و دراکولا آخرین ساخته رضا حتاران از گزینه هاست تا چند روز آینده لیست هفت تا فیلم اکران نوروز منتشر میشه باید دید که شاید ها چقدر درسته اما از فردا فیلم نزدیکتر ساخته مصطفی احمدی نمایش شروع میشه بریم بخشی از ای فیلم با هم بشنویم تا بعد بگم عوامل فیلم کیا هستن سلام من اکستصا سلامم پسرمی سلام محدابهشه میگم ما مهری بندازه کافی به هم ریخته هست تو رو خدا تو دوباره شروع نکن. من کاری به کسی ندارم دارم میرم قرص بخورم. بچه دلش دی چش ببندی؟ نوی خایم نازهری یاددید نیست. همون که پیسا فروشیدش تو برند چی میخوای بگی مامان؟ منظورشون اینه که خدای نکرده ماکا یه چیزی باست خودش میگه حرف زدی با ماکا؟ چیزی که مصرف نمی کنه. این بچه هستم مشکلی چیز دیگه هستم بخشی از صدای فیلم نزدیکتر ساخته مصطفی احمدی رو شنیدیم خب گفتی کامرا؟ بابره عرب تگاه آهنگرانی پارسا پیروسفر و ستاره اسکندری بازگره یه فیلم هستن اینم بگم که اگه فیلم نتونه تا 20 روز دیگه کف فروشش رو حفظ کنه مجبوره جاشو به یکی از فیلم های نوروزی بده که خب اینم مسیبتی که سر همه فیلم های ما اکران شده میادش خوب. از موسیقی چه خبرکاره جدید؟ آلبوم تازه؟ حالا از کار جدید میتونم به آخرین کار آرش ترانتیس اشاره کنم که تو همین یکی دو روز گذشته منتشر شده به اسم بیکسی آرش که جزو خواننده‌های مهم هوی متال و چهره شناخته شده توی آمریکاست مدتی به فکر جمع کردن یه آلبوم به زبان فارسی که خب این ترانه احتمالاً یکی از ترانه‌های اون آلبوم در آینده خواهد بود. بسیار خوب ممنونم از زحمت کارون عزیز باد خدافظی می‌کنیم تا شنبه هفته آینده شنبه خدا نگهدار و کار آرش تارانتیس با نام بی کسی رو می‌شنویم بخشش رو. این کسی به در نمی میزنند به دست پرمللو ما پرنده پر نمی میزنه یکیز شب گرفتگان چراغ در نمی میکردند کسی به کوچ سار شب در سهر نمی زنن. پیش اما از سال 88 و بعد از اون ماجره که تو انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد یه بخشی از مردم هم هستن که شاید به انتخابات و روش های مسالمت برای پس زدن حکومت هم اعتقاد داشته باشن اما اینا هم با توجه به اینکه که اعتقادشونو به سالم برگزار شدن انتخابات از دست دادن نامیدن از رأی دادن اما تو این نگرانی هم خیلی نگرانی درستیه فقط کسایی که مخالف این نظر هستن. میگن نکته ای که هست اینه که تو انتخابات 88 دولت عثمان محمود و شورای نگهبان و بیت رهبری و سپاه و بسیج کلاً توی یه جبهه بودن. باقی کاندیدا هم توی یه جبهه دیگه. یعنی کل اجرا و نظارت انتخابات هم دست همین جبهه بود که فرمانده کلش آقا بود، معاونین قرارگاهش هم حاج آقا جنتی و عثمان سپا و فرماندهان سپاه و بسیج بودن. یعنی که کلاً تو این انتخابات تقلب کردن، حجی هلو و رو تو بود. چون مثلا تقلب رو وزارت کشور که مجریه انتخابات بود میتونست بکنه ناظر انتخابات هم که خب شورای نگهبان بود سپایی هم خب دوروبر صندوق های جا بجا شده نگهبانی میدادن که از نگاه چپ بهشون نندازه امسال اما توی این انتخاباتی که جمعه برگزار میشه دولت و شورای نگهبان به خون هم پشنن یعنی مجری و ناظر انتخابات از هم حالشون از هم به هم میخوره پس شاید به عقیره این دوستان امیدی باشه که وسط این عدم تفاقم بشه انتخابات همچین نیمبنده نسبتاً سالمی هم برگذار بشه خلاصه که هزار نکته باریک تر از رعی اینجا مؤثره تو مملکت هد اینجوری هست خلاصه. انتخابات کلمه بزرگی در کشورهای دموکراتیک حتی یک انتخاب شهروند میتونه مؤثر باشه ولی در کشورهای دیکتاتوری این کلمه مورد تجاوز قرار گرفته و هر طوری که دیکتاتور مایل باشه از آن استفاده میکنه بله خیلی ممنونم از تماس شماشونم نظرشون بزراجم، بزراجم. روزنامه روزنامه با امروز با پیش روزنامه تجارت امروز تیتر زده بود که اتش خودروسازان جهان برای تصاحب بازار ایران حق دارن بازاری که توش برای خودروی پراید 20 میلیون پول میدن برای برا... خ... این پراید برای برا خرد خارجی بازار نیست که لامصا پلاست اینو هلوه روزنامه جهان اقتصاد به نقل از رئیس مجمع عالی واردات امروز تیتر زده بود که قاچاق 20 میلیارد دلاری که دیگر قاچاق نیست باست دیگه بهش میگن واردات یوشکی بچه های استفادیدن مملکت مال خودشونه دیگه گمروکی دادن از این جیب به اون جیبه اینه که بندر اقتصادی زدن خودشون جنس میارن ترخیص میکنن موز همه هم نمیشن دیگه آخرین باخرین برنامه زنده این هفته هم پمشت. شاعر میگه گیرم تو را ندیده بی آسمان صبح به تاریکی این انزوا می نشستم گیرم صدای تو را نشنیده زمزمه باران را به همه همه این تنهایی می باختم گیرم از پشت هیچ کوهی لبخند آفتابت زبانه نمیکشید آنگاه دیگر نه آسمان آسمان بود نه آفتاب آفتاب بود نه باران باران چه ساده ح می شددم اگه ندیده بودمه چه سخت را می شدید. اگه نمیرو بودمه تو با چشای آسمون به من نگاه میکنی روز شب رو با همین غزل سیاه میکنی بوشه فاسخی به جز نفس به خنده سلام من چه بید خدا هست خدم ببین هیچ تو همان من تو آخری حضور من تو اولین همیشه قرار بی صدا میونه نور و شیشه ای تو رنگ تازه گیزنی دوباره پای خونه رو بمون که ترچ کنم تموم رسم کاف نرام به شرمم قسم چه با من است تو بهتری منو به انتهای ما چه بی منو میبری چه ساده حس میشدم اگه ندیده بودمه چه سخت را میشدی اگه نمیرو بودم چه زود دیر میشدش اگه به ما نمیرسی ترانه اینا بود اگه از تو صدا نمیرسی